بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واهله وصحبه اجمعين Amen. اما بعد هل بعد از چند که شاید یک مقداری ریگ شوط از سنگینی میشد اون در که فسیله بود برای تشخیص این چین احادیث برای صحیح حسی صحیح میست الحمدلله که متنی که انتخاب کردیم از بحث درایت اینجا بحث روایت بود اینجا بحث درایت درایت بحث سهم سهم حدیثه ما الحمدلله متنی که انتخاب کردیم مثل عبدالحکام انتخابی هست که علام مقدسی انجام داده طبق حادیثی که در مسلم و بخاری، صحیح مسلم و بخاری. امام مسلم و بخاری که دو تا امام معروفند. امام محمد بن اسماعیل بخاری و مسلم حجاج نیسا بوری که دو تا از عیمه بزرگ اهل سنت و دو تا از عیمه بزرگ حدیث که معروفند که در علمشون و در شرط کبیه که در کتاب صحیحین خودشون بوداشتن و امتها اجماع کردن در صحت احادیث صحیحین گونه که ابن سناخ در مقدمهش در علوم حدیث ذک میکنه اجماع اهل سنت و همچنین امام نسیمیه امام سراینی و خیلی از این میکنن در اینکه احادیث صحیحین اجماع مورد قبوله به اتفاق اهل سنت مورد قبوله معده بعضی از حدیثی که بعضی از صفات همثال درخوزی بر آن ایراد انتخاب کردن انتخاب کرده؟ حالا اون انتخاب هم یسیر خیلی کمه خیلی کمه شاید جاهایی به اعتبار شزوز باشه نه جای اعتبار ضعف در اتنات مثل حدیثی که در صحیح مسلم داریم حتی حتی لا تدری شماله و یمینه و منفق شماله. واضح که قلب صورت سورت گرفته. باویدو که در صحیح مسلمه. لیکن شازه. چرا شازه؟ چون متنش مقالب با حدیث صحیحه که حتی لا تدری شماله و انفق یمینه. قلب حاصل شده. شمال در صرف با چهت شده. خب. و بعدی ها که در نفسشان در دلشان اینو هوا و هوته تعصبه میان مثلا از علمان این اثر که ما داریم البانی را مثلا زیر انتقاد قرار میدن انتقاد داشت میکنن که البانی اومده احادیث تحیحن و زیر سوال برده به خیر، آلبانی خیل، البانی احادیث تحیحنی که درش اجموع شده هیچ وقت به خودش اجازه نداده که اون مورد زیر فعال ببره یا مورد انتقاد قرار بده هیچ وقت البانی حدیث مورد تح اون احادیثی که اجماع روش خاتل شده هیچ وقت مورد نقد قرار نداده بلکه البانی حرفی که زده همون حرف امام دارا و ابن مناکم و ابن دقیق و خیره از اهمی حدیث در انتقالی که داشتن در بعضی از احادیثی که در صحیحین هست اونم نه بخاطر اصناد تنها بلکه جواغایی هم بخاطر محسن عمدت الحکم چند تا مزیت داره. مزیت اولش مقدار اولش احادیثه کمی احادیثه. مقدار کمی میچورس دخورده بیشتر حدیث نیست. دومیش که همون که خواهیم میدونی احادیث مستهک کن علیه. چهارمیش دومیش اینکه ثبت مذاهب ما یه نوشت نشده که ما بگیم که قوانین این مقداری حملیه. بر حسب مذهب نه در حدیث مذهب مطرح نی این حنفی این حمبلیی این مالک بحث مذهب مطرح نی در بحث مذهب مطرح نیست ما اشخاص را حق با حق میشنیم نه با اشخاص ن شفت هم مذهب حق میگه ما قبول نداریم ما حق قبول داریم که مصداق این آیه باشه و این تنازعتون فیشه این فردوه الالله و رسول رسولمون خود شد تنها چیزی که از خود بوجهار بذاشت و قرآن ما باید به قرآن و سنت بر بگردیم این تنها چیزی که خداوند در حال نزا اختلاف بهمون دستور داده بهش بر بگردیم خوبی مزیت عمدات الاحسان در همینه که نظار را حل میکنه اون اختلافی که ما داریم حل میکنه احادیث مجمعان علیه که هیچ اختلافی هیچ شکی در صفحه اسنادش قوت مدنش نیست معلف کتاب کتاب را با کتاب تهارت آغاز میکنه ولی بعد از حمد و سنای خدا که باید هر جا باشه بیکنه الان بحث کتاب تهارت تهارت مزیدش یا خوبیش بید برای آغازش به دو رفت داره مثلا اول اینکه که شامل دو چیزی یک تهارت معنی یک تهارت حسین اول مورد طالب علم میگه میخواد حدیث یاد بگیره باید نفسش بکنه، پاک بکنه. از گناه و شرک و از ریا باید پاک بکنه. نفسش طاهر باشه، پاک باشه، پاکیزه باشه. تا این که بیرونش، تا این که اعضایش بر اساس آنچه که در درونش پاک شده، پاک بشه. ارزش پیدا بکنه اون عملش تا وقتی که داخل درست نباشه قلب این تو پاک نباشه دیگه عمل به در نمیخوره همین اگر عمل درست باشه قلب درست نباشه میشه نفاق و لطفی نمی و میکنه دیگه قلبش پاکه عملش رو دراده و اون کدی که دیگه قلب من پاکه بل عمل الشراب مثل كي ايبي ايبي ترى مشكلة كذاش كي خلق ثاني منه وخلق منه طين ليك الخضر قبول داش غناي قدرته كانت بخه كان اغرى يشيب عمل اش باش اعتقاد الشرجس وجه حديثها واستقاناتها ام قصهم و بها. به جهدوا به موارزا به بني إسلام وفراه موارزا به مفاعل السلام و جهدوا به و السيد خانتها أخرى بل يقين يقين بجنان و السيد خانتها أخرى يقين بجنان ولكن بجنان بجنان نحوه لكن الآن أولا بأن نفس الشيء تطهير با توحيد فهم و بررسی حق خداوند و بعدم با یاد گرفتن تکلیفات با یاد گرفتن عبادتی که خداوند اون را دوست داره به وسیلی است برای پاکی اعمال پاکی بیرون انسان بیرون انسان كلمة غار در اصل نغت از سحر پ ط و ه و يظهر بحث غار بحث فاقيه لكن بحث ان فاقيه تحت فاقيه فاقيه خاصي ك خداوند رخ الله جل ثنوه وحک کردم بر رسول الله با شستن صورت و داستان و مرس سر و شستن باها پس خود یک لفظ لاز لفظ تحانتی که دلالت لغاوی داره در شعر دلالت خاصی داره حالا ما در خیلی مباحثی که خواهد ما در خیلی از این مسئله با من کمک میکنه مثل نماز الصلاه، صلاه در لغت چه معنا؟ معنای دعا که در شعر بشه معنا؟ به معنای رکوع و سجود و ایستادن جدوی خدا رو قبله یک حیعت خاصیه پس یک مدلول لغوی در شهر مدلول خاصی دارد که به اون چارچوب داده حالا ما نگاه بکنیم در بحث عقید هم قاعده بوده اگر ما تعریف عبادت رو دونستیم این به هم حل میشه. پس مدلول شرعیه کلماتی که در لغت یک معنای خاصی داره. کلمه‌ی عبادت که با وشستن صورت و دست و که یک معنوی خاصی داره، تفاء احادیث صحیح و آیات قرآن، آیه 6 سوره ماده. خود کلمه عبادت چطور کنیم که توهرا جزئیات بده کلمه عبادت این چیه تعریف میشه کل امر یحب الله و یرضا صحیح است این خلاصه با شما هر کاری که بند دوست داشته باشه محبت است داشته باشه یعنی مورد رضایت خدا باشه اینا این, این عبادات خب شاید یکم سوال بکنن از کجا ما میفهمیم این دو این دو تا شرط از کجا اومدید ربنا ما میگیم که رسول الله فرستاده شد تا این که عبادات رو به ما یاد بده رسول الله چطور متی بکنه ما به گفتیم یه جوری نگاهمون اوپر ما دیدیم مو تکلیفمون یاد بده این منفعت لغوی منفعت عقلیه که رسول الله باید با ما یاد بده چون اومدن که یاد بده ومدحث لغبي ومدان تعليم دهان دهك تعليم مدان وانت مدحث القرآن ايش ما بخان بيجيني قرآن القرآن جميعا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقفر لكم جنوبكم او اگر محبة خدا داريت شكاتي محبة خدا مكون المؤمن يعني ميجد اگر المؤمن هستيت وخدر واقعا دستاريت ای محمد بون، ها به چه کار بکنند؟ پیروانی. از من اتباع بکنند. از پیامبر خدا اتباع بکنند. از رسول الله اتباع بکنند، پیروی بکنن خب، تا چی بشه؟ تا محبت الله جانشانو نتیجه شون بشه. پس محبت خدا نتیجه شخصیه. شخصی که متبع بشه. از رسول الله چی؟ در عبادت خب اگر کسی در عبادتش متبع در نشه میشه خداوند اون را دوست داشته باشه خیر دلیل کجاست دلیل نیست و لازمه محبت هم رضایت اگر خداوند دوست نداشت راضی نبود هیچ وقت نمیکنه بر رسول الله این بحث تهارت و بحث عبادت چرا این شخصیت سوال بکنه اولین چیزی که ما سوال میشیم در روز آخرت نمازه اول ما یسعه به هلعب اصلا چرا معلومت کتاب تهارت را مقدم کرد کتاب سلام واضح. چون اگر بویی نباشه نماز هست نمازی و تیری برای تحت نمازت اگر بوزو نباشه نمازم نیست نماز درست نیست مگر حالت خاصی که بحث ضرورت و تیمون باشه بس لازم بود که معلم بحث تحارت را هم از جنبه حسیش هم از جنبه معنوی مقدم بکنه بر تمامی ابواب کسی که مؤمن نباشه ته ورت معنای باشه بیاد کتاب الصلا رو بخونه بدنت می‌کنه بلد نشه قر نماز شب روز بخونه ابوان منصورات اعمالش محبوطه افتاد از لذت تشمون خدا ارزش نداره از کتاب اطهرات اولین حدیث حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ألقم بن وقاص، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ماء يسنض في قفل ستة طابعين عشر أبن يحيى بن سعيد الأنصاري أولا يحيى بن سعيد ونصاري طابعي هذه تابعيه هي التي سنة فرصة طابعي تابعين لا يمكن ديجا يكون يحيى بن سعيد ونصاري هي من محمد بن إبراهيم السيد هذه هي طابعي أقرانا محمد بن إبراهيم هي أزعل القام ابن وقاف. أزعل القام ابن وقاف. القاماتي عبد الرحمن الخطاب. إن حديث در علم والصلاة حديث كحديثية. كيف يشمعنى؟ دوتة من أبوحجة حديثين حذر حديث بالقرصين. ييجي. غریب مطلق دو غریب نسبی اولا غریب مطلق یعنی چی غریب نسبی یعنی چی اصلا قوله غریب یعنی چی حدیثی که در یک جا از اسناد از یک راوی عبور بکنه بهش میگن غریب در یک جا از اسناد از یک راوی عبور بکنه بهش میگن غریب اولا شاید در دو جا ولی شاید در سه جا باشه در یک جا یا دو جا از اثنات. از یک راوی یا بیشتر از یک یا دو جا از اسناد، از یک راوی عبور بکنه این بهش میگن غریب خب آیا اگر یک حدیث سؤال اینجا مترهد آیا اگر آیا اون حدیث را یک صحابی روایت بکنه عمر ابن خطاب الان پین نفرم ازش روایت کردن تا آخر پنج نفر جه نفر سن نفر چار نفر به از رسول الله یه نفر سنیدن اون بهش میگن غریب خیلی هیچ وقت اگر تفرورد در صحابی باشه بهش غریب نمیگن صحابه هم عدودن هیچ وقت به گفته صحابی غریب گفته نمیشه رضی الله عنه و رضعان تذکیر خدا تامده شنه پشت سرشونه رضی الله عنه رضی الله عنه و رضعان خدا از اونها رضایت خودشو اعلام کرده. تک خدا از اونها راضیه. حالا غریب نسبی چیه؟ غریب مطلقیه. چیه؟ غریب مطلق وقتیه که چی؟ از اون صحابی یک تابعی رواید بکنه. از اون صحابی تفاید یک تابعی رواید بکنه. در اینجا از عمر رب و کی روایت کرده؟ القنل فقط یک راوی، این شو؟ مطلق غریب نور دوم غریب نسبی هر در یا درجه از اثناد غیر از اون کتی از اون صحابی روز میکنه. از یک رابع عبور بکنه اون اسناد. بیش میگن غریب نسبی یعنی اگر تابعی نواشه تابع تابعی تا مفهو در وسط اثناد هر وقت در وسط اثناد تا انتهای اون تا انتهای اون از جهت صاحب کتاب ناد جهات رسول الله اصنات از یک راوی راوی بکنه بشمی ها چی؟ غریب و نسبی، مثلا اینجا از علقه کی داری؟ محمد ابن ابراهیم التیمی درست هست؟ این بشه غریب و نسبی خب ای، چاید سؤالی پیش بیار، خالا بیال بگه میکه میشه که از تحبیر تو نفر رویات بکنم بعد از تابعی یه نفر باشه؟ بله میشه میشه یک تابعی از دو تا صحابه روایت بکنه و میشه یک تا میشه دو تا از یک صحابه روایت بکنم بعد از اون دو نفر یک نفر روش نمیشه و معمولاً معمولاً غریب نسبی معمولاً غریب نسبی درش ذات هست معمولاً واضح در طبقه افساده طبقه موفق تابعه چطور میشه که طبقه موفق تابعین فقط از یک را به عبور بکنه خادر همین علما مزمت شموردن تطبع غرائب حدیث مثل امام مالک که هاش مشهور کسی دنبال غرائب حدیث بشه زندیغ میشه فلان میشه و خیلی از الفاظ تند اومده در اونهایی که دنبال حدیثی هم که تکن تکیه مطلق نه نه از حدیث حابی تحکیب روانه کسی که دیگه از تا اون روایت نداشته باشه. خب، سوال اینجا، سوال توبومی که محترح میکنید. بیشتر احادیث غریب در کجا یافت میشه؟ بیشتر احادیث غریب در معاجب تبرانی، معاجب تبرانی، معجب تبرانی, معجب تبرانی اون سعتی کبیر، مزنه و جایده اصلی احادیث غرایب. معمولا معجب تبرانیه معجب ایک بزرگش رو کچیدش و, و متوسطه چون بقیه اینمی معمولا دقیق بودن در مقلح حدیث خب وقت این حدیث شد غریبی که علما در صحت اصناد آن اجماع دارند در اینجا یک فایده خیلی مهمه در این حدیث یک فایده خیلی مهمه و اونم مذهب اهل حدیث خلاف متکلمین از اشعره و معتزله در قبول خبر واحد اینجا از رسول الله کن نفر یک نفر از تابعی کن نفر سنیده از القمه؟ یک نفر محمد محمد البرائی کن نفر؟ یک نفیاه بعد از اونجا حساب پیدا کرده اجماع شده الان علمای اسلام اجماع دارن در صحت این حدیث و امکن علما غیر ممکن جواه بدان با صحت یک حدیث و اون حدیث اشتباه باشه یا صحیح نباشه خب شما جناب آقای المعتزلی چی میگید میگن که نه ما در احکام قبول داریم در عقیده قبول نداریم و از تجاه فرد بودی. چه فرقی هست بین عقیده و عبادات عبادت, عبادت موبد درست دقیقتر باشید. چون معیار حسنات و سیاد همشون اعمال، چه که داری چه کنون در اعتقادمون حساب بشید، ولی اعمالمون ذره به ذره حساب بشید. اصل اسات اعتقاد مرتذله در تقدیم عقل بر نقل عقل مقدم میکنه بر نقل قصدا احادیث احاد هانی که بهشون بگی، مثلا وقتی حدیث جاریه در صحه بخاری میشه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه این الله الله فوق السماء فوق العرش خدا بله آسمان میگه بله عرش فوق السماء میگه بله آسمان رسول الله اعتقاد فرمون، اعتقها فإنها مؤمن، آدادش بخوا که مؤمن، این حدیث قبول فبول نداره معتده چون برخلاف خلاف اعتقادشونه، خب چیکار کمال میکنیت اجماع دارن در سلحتش، نه، عقل در احادیت اعتقاد منقدمه بر النقص، بس اول عقل به النقص، انبیاء فرسطه شدن که به ما اختیار بدن که عقل متحده دکلیف بکنه، یعنی که اومده به ما به ما یاد بده و به ما تکلیف تکالیف مشخص بکنه چرا اسم دین رو گذاشتیم چرا عبادت رو گذاشتیم اسم تکلیف چرا ما به ما میگم مکلف پس تکلیف چه معناست اگر قرار باشه عقل مخدم بر نفس باشه اگر قرار باشه عقل همه کار باشه تکلیف چه معنا داره پس ما مکلف نیستیم اصلا قرار باشه هر عقلی برای خودش یک خدایی باشه یک تشریحی بکنه هر... یک چیزی برای خودش اختراع بکنه پس خدایان زیاد میشن همونگونه که در قصه عدیب نفاتم در سنان ترمزی در حسن با در در تفکیر در تفکیر که يا رسول التلاوت كذا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله عدي بن حسام يجي يا رسول الله ما, ما اتخذناهم اربابا من دون الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم علماء كل الشر عرفوا برث فربدي قرن هذا ليه؟ صرا بود بود وفي ما رسول الله می آیا اینها اگر چیزی که خداوند حرام کرده بود حلال نمی و چیزی که حلال کرده بود خداوند نه حرام نمی‌کرد کرده گفت این عبادتشون این ارباب قرار دادنشونه پس کسی بیاد تشریع بیاره برخلاف اوامر الهی می چی؟ مشرع می شه رب اتقد و احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله خداوند تکبیرشون میکنه. اونهایی که بر حرف خدا حرف زدن و آنچه خدا بر خلال کرده بود حرام کرده پس عقل نباید روی شرح بیاد حرف بزنه خب شاید یک شخص از شما سوال بکنه چرا خبر یک شخصی که زنیه شما قبول دارید یک شخص احتمال داره راست دو که احتمال داره دروغ دویه شما از کجا بایدی که راست گفته؟ ما میگیم در نواب اولا ما خبر هر شخصی را قبول نمی کنیم خداوند در فاسق شرص گذاشته داشته اینجا اگر فاسقه منبعیم و سویه اگر غیر فاسق بود اگر عادل و ضابط بود باید تبیان بشه. خیر مگر در مسائلی که برایش عدد شرط بده. مثل در حکم زنا و این مسائل که چار تا شخص باشن یا در بحث شاهد در بحث دوزی و این مسائل که دو نفر باید باشن لیکن در غیر این امور یک شصت مورد قبوله بچا درین اولا فرموده قرآن والعلامن كل فرقه طائفه منهم يتفقهوا في الدين طائفه هم در لغت عربی به یک نفر اطلاق میشه در لغت عربی طایفه هم یک نفر اطلاق میشه خداوند میگه اگر از هر فرقه یک نفر یا چند نفری بران قیاس بگیرن که بیان به امتشون یاد بدن في همین تتفقه لأسال النبوات مرحبت مرحبت المعاد من الجباة سيحدث ويحدث يا مرحبت انك سأتي قوم اهل كتاب فإنك أول ما تتعوهم به شهدت أن لا إله إلا الله مرحبت المعاد من الجباة سيحدث في ماهو في يمن تفقق الدين بكنا خبر أنجو بقان يمن يوم بقان اهل كتاب بقان يهود بقان كلاعين خبره واحد ما قفو نذاري لا چون عادله، چون ذابط رسول الله تذکیهش کرده، خداوند تذکیهش کرده، وظیفهشون استقبول بکنه. پس ما هلخبر واحدی را قبول نداریم. یک شرطیه اشتباه خیلی دقیقاً حلمان حدیث، یک شرطیه کمی اشتباه بکنه، میگن. فقه تون یهیم، فقهت ولی وهم دارد تا دقیقه بگید در حدیثش که شاید متوهم شده باشه. ما، دار بحث قبول خبرة واحد هم دليلة القرآن داريم لأولي هم دليلة سنة داريم هم قولة رسول الله و هم فعلة رسول الله هم هم التقريب رسول الله اذ قولة رسول الله نبدل الله رأى سامع مقال نبدل الله رأى سنة فره يجن فره سامع مقال نتفعه أحفظها وأدائيس وأخر از فعل و سرقه معاذ به جبل می فرسته از سخیلی و بلال بلال حال بلند میشه شه ازان میگه برای کل اهل مدینه که وقت داخل شده نماز عرض بخونید و یا اینکه که اگر روزه هستی چی روزه بخورید صحت عمل بر به ازان بلال اگر بلال ازان اشتباه بگه بازه اونها خراب میشه چطور که ازان بلا قرآن قبول واقع شد چرا قبول کرد چرا رسول الله فعیید کردن ازان یک نفر چون عادل و شغلش رو میدونن وقت غروبو میدونن خب اگر نابی, نابی نبود امن اومن یک نفر وظیفهش بود که ببینه تا این که بهش بگه کلان وقت داخل شده پس ما از قول از قرآن از سنت و نتا قول و فعل تقریر است بنابراین در اینکه خبر واحد مورد قبوله و این هم از جمله اخبار احادی که در شرح سغیر شده است و علما اجماع در صحت آن دارند خب میر ابی عمرو بن خطاب رضی الله عنه قال سمعت رسول اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلم یه قهال در این حدیث یکی از بالاترین رتبه های الفاظ ادای حدیث الفاظ ادا ویا سماع حدیث شما یه چیزی را از کسی شنیدید شما الان در این حلقه شرکت دارید چه لفظی دفیق تره بفار ببرید لفظ حدثنا لفظ اخبرنا یا لفظ سمعنا. سمعتو سمعتو از زدر خیلی از علماء بالتر رتبه الفاظ سماع را داره. و در بحثم و صلح حدیثم قادمه. اینجا عمر ابن خطاب میگه سمعتو شریده با گوشاش. غیر ممکنه که یک حرف اقا بجلو بکنه. سمعتو رسول الله صلی الله علیه وسلم یکود. خب. بعد از زدر بعد از علماء دیگه میاد جمهور علماء حدثنا بعد اخبرانا تو دیگر الفاظ دیگر احادی الفاظ سماع بولا سر ها در بعضی از سرق این روایت اومده که میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و وسلم یخطب و یخطب در خودش میگویند این حدیث همه جا نبوده در خوده بوده و عمران در خود این حدیث ساز کرده در حال. من منبه ولی جویی که عجبه چرا؟ چطوره که فقط علقمه شنیده و از رسول الله فقط عمر شنیده خیر احتمال داره که تجاره عمر هم شنیده باشه لیکن عمر رق کرده و علقمه هم شاد اشخاص زیادی بودن که اون را در اون دقت کرده و نحق کرده برای ما شاد یک شخصی از اینجا یک فائده جلیلی ببره فائده خیلی مهمی و اون هم این که فرق بین خطبه های رسول الله و عمران خطاب و های امروزی خطبه های عمر و خطبه های رسول الله وقتی که ما انگوش می زنیم و می شماریم و می خونیم می بینیم که چی بحث عبادته بحث اطلاحه بحث تعلیمه خطبه های امروزی متاسفانه خدبه هایی که یا مردم نمیدونند یا بحث سیاست یا بحث نمیدونن روزنامه و اخبار ما نمز اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای منبر یک حکم شرعی را به اصحاب یاد میدن این الاعمال و بالنیات موضوع به باشید که صحت اعمال برمیگذر بشید صحت نیت ها داره یاد بهشون میده، تعلیمه اخبار نیست که میخواد خبر بدی به مردم نه اونجا این چند نفر، هفت نفر کشته شدن، هر نفر کشته شدن طالب علم باید بدونه پرسخن هم نباشه حرف زیادی هم نزنه نگاه بکنی لذت کوچک انسان میتونه بگیره زردش بکنه حرف که طولانی شد دیگه کسی بکنه نگاه بکنی چه سخن چقدر، ریز، دقیق فور معنا فور مستوى إنما الأعمال بالنية سأخر الحديث. خبئي إنه التعلم من التعلم هاسبريمان كم ما بتنقذ من الأسبح في فوائدي كم ما بتنقذ مني. بعدني جت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جت سمعت رسول الله. شاءت طالبة هذجة. كفايتي بين رسول ونبي كلا نقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لا أذن رسول الله ولا أذن نبي. چرا چون علاقا گفتن هر نبی پیغمبری رسولی ولی کن هر رسولی پیغمبر هست پیغمبر هسته 24 هزار نفر بوده ولی صاحب رسال ها چند نفر بودن؟ 300 هندی 300 هسته چند نفر 34 نفر حالا حتی که علمان اختلاف دارم این رسول محصد که شرع مستقلی داره صاحب شریعت مستقلیه کتاب و ثمانی مستقلیه ما در خیلی عمقی نمیریم چون این اختلافاتی که هست مبنا و عصاص البی نداره بیشتر اشتهاداته بیشتر اشتهاداته فقط ما میدونیم که رسول رتبهش بالاتره و یه چیزی که بیشتر جمهور عالمان بر اینن اینکه نبی اومده رسول را تایید بکنه اومده بر اساس تایید شرع رسول از اهمیت این حلیث بعد دنبولی حدیثی مدید اینمان عمال و بنیاد قبل از اینکه حدیث را تفکیک بکنیم بو باز بکنیم بو امام شافعی رحمه الله همونگونه که امام به حقی نقل میکنه ازشان میگوید این حدیث نصف علمه یک ثبوت علم برسید این حدیث یک ثبوت علمه چرا در بحث اعتقاد خواهی کنیم؟ اعتقاد شيء، اعتقاد، اعتقاد ما عمله جواره، عمل قلبي، بقول لزبان وعمل قلب، نية نوت نطق عمل نية نطق وعمل، إن ستجوسي شيء تعريف إيمان وإيمان السلاحي، ب... وان شيءك ما امام شافیه اگر میگه یک ثبوم علم این حدیثه به قاطر چیه؟ به قاطره که شرع و دین اومده این سه چیز را اصلاح بکنه قلب، زبان و فعل این حدیث کدوم یکا را دربر بگیره؟ انم العمال به بنیه به قصد میخواد قصد اصلاح بکنه چون بحث قصد خاطر همین بگیره چی؟ این حدیث یک ثبوم الوا در بر گرفته خب میاما تا کی حدیث خلاصات این قسمت همش فواید میاد الان قسم مباحث فقهی هم میاد در بحث شرح حدیث شرح مباحث علوم حدیث میشه شرح مباحث لغوی مشه فوائد حدیثی خیلی مسئله میاد در زمن شرح قفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم ياد إنما إنما الأعمال بالنية فإنما الأعمال بالنية حرب الله عز صحيح مسلم وما دب لازم إنما الأعمال بالنية نيم دب بالنية مطلقا. فق دار صحيح مس بخاري أنك في إنما الأعمال بالنية بالنية دار صحيح مسلم. رب مين در شو فرق بينه؟ نیه هست و نیه هست این نما در لغت عربی به سه معنامیات این نما به سه معنامیات اگر این درست ای کمی احساس میکنه که شادی کمی خوش باشه باید درستای دیگه شاید شیرین تر بشت انشاءالله این فقط یک ای کمی حدیث مباحش زیاده بغفر همین این نما به سه معنامیات یک به معنای حس کلی تماماً إنما إلهكم إله واحد إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد حس كاملا إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد الله هيكي حس و اولويه الحكر در خداوند دو وتأكيد. مبالغة وتأكيد و تاکید مبالغه حرم عليكم الميتة إنما حرم بدرستيكه تأكيد بدرستيكه معلومن بشترا به این تأكيد إنما حرم عليكم الميتة انما حرم عليكم الميته مبالغه و جاهيه هم بيان موصوف إنما لونه كلون الشمس إنما لونه مثل لونه أو إنما لونه كذا كهذا بيان موصوف يتشهدين مخيبات تكون إنما شكله إنما لونه إنما طوله إنما كذا بيانه كموصوف تأكيد فان مع الفاظ عربي بات معانيش بدوني فان در فهم معنی حدیث مکمک بکنه این بسه معنا میاد یک دو مبالغه سه بیان موصوف سه بیان موصوف در این حدیث بکنه معنات؟ حال بمعنای دلیلی بیان که دلاغتی به حسن داشته شد ولی اصور اینه که این نما در این حدیث و در تمامی اعمال برمیده به بخش ما درباره چه عملی صفت داریم میکنیم هر عملی یا یعنی اینکه این عمل خاصیه بحث بازم یک بحث دقیقی داره در بحث خود این اعمال چرا نا قُفَّن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَفْعَالُ بِالنِّيَاتِ نَقُفَّنَ شِرَى نَقُفَّنَ إِنَّمَا الْأَفْعَالُ بِالنِّيَاتِ نَقُفَّنَ مُدانَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ شِرَى أَعْمَالٌ نَّكَسِمْ سَنُبِيعَ اگر اگر اگر میگفه رسول الله میفرمودن انما افعال فعل قلبم شامل میشه خود قسم شامل میشه خود قسم یا به قسم خود قصد یا به قصد فیدار میره ولی وقتی گفتن عمل اصل اینه که عمل اعمال جواب رهبریه با قدر اینه که فعل قلب خارج بشه فرمودن چی انما اعمالو چی بالنیا انما اعمالو بالنیا خود نید در لغت عربی به معنی قصد هر نوع یا و قصد خاصی من قصد دارم اینو به فلانک شرف این قصد مقصده در این چه اعمالی مراد در این حدیث مقصده یا یه نوع قصد خاصی رو میخوام بررسی করি رسول الله چی میخواد بفهمونه؟ میخواد بفهمونه اعمال خاصی که برای خدا فقط انجام میشه یا برای غیر خدا اون چیزی که ما برای خدا داریم انجام اینم اعمال اون اعمالی که شرعیه اون اعمالی که ما ازش عجر میخواه چون بحث عجره پاداشه انما من اعمال و بنیه یا بنیه این حدیث تا این قسمتش برمفهومش فرموده خداوند گواه میده که میفرمایند يقولون ده القرآن وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين بحث إخلاف درين حاليا وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين بحث إخلاف إنما الأعمال بالنيات أعمال إنسان برمجازة بإخلاف بالنيات أجر إخلاف نباشه اون عمل مورد قبول هست؟ خیر، اون عمل مورد قبول نیست. شاید یک سوال بشه. اصلا یک عمل شرعی چنو عملیه؟ چنو عمل عملی هست که خداوند در از ما قبول می شرط قبول عمل چیه؟ آجایی. اخلاص و متابعت سه غمم ایمان شرط قبول عمل چیه؟ اخ... اول ایمان شخص باید مؤمن باشه کافر اول باشه شب روز عمل بکنه این چیزی که ما محمد, محمد, محمد, محمد, محمد الامین شنفتی در از غلبیان زک میکنه. شرط قبول عمل یک ایمان دو اخلاص سه متابعت شرط در عمل که اخلاص باشه اول اول مومن باشه بعد اخلاص در عمل داشته باشه اون عملی که انجام داده باشه اصلاعاتات اصل شرعی داشته باشه مطابق داشته باشه چون چرا چون ما گفتیم عبادت که در اینجا عمل مقصد اون عمل خاصیه که عبادت عبادت کاری که خداوند دوست داره و اعلان رضایت کرده از اون درسته؟ خب یه شخصی بیاد بعد از نماز عشان بشینه چهل بار بگه سبحان الله چه با گره الحمدلله ذکر بیشتر داره میگه میگه آنه ذکر بیشتری داره میگه لیکن عجد داره نه در بناکار گناه میشه چرا؟ عمضان اگه کسی بخواهد در چهل بگه چون متابعت درشی بر شرع ده با عملش اضعال کرده که چی؟ دین کامل نشده و خدا من گفته علی و مردمش بلکن دین نکن این چیزی هست که امام ابن الانباری در کتب برعزک میکنه میگه در این حدیث دلیل بر اینه که انسان قبل از اینکه یک کار را شروع بکنه آغاز بکنه باید شکمشو بدونه که آیا اون عمل مشروع هست یعنی چون بحث اعمالی هست که شرع از ما قبول میکنه قبول اعلان رضایت کرده تا این گفید بعدالا اون اعمالی که مورد قبول هست ما بر چه بر چه قصدی اون را انجام میدیم که حالا بعد خداوند تشریف بده که چه این عمل مورد قبول هست یا نیست در لفظ مسلم داریم به بني نیت، در لفظ بخاری داریم به نیات. فرقی با هم ندارد، نگر این که مفردش دلالت بر قلب داره، قلب خود شخص. یعنی برمیگرده به خودش اینم العمانو به القلبی او بنیت شخصی القلب. و نیاتو به طریق جمع موجود. خب علما ما به بحث اختلاف در این حدیث اختلاف فقیی که در این حدیث هست حالا نباید بکنید مول لغت عربی که بفهمیم الان مشکل فقیمون حل میشه مشکل فقیمون حل میشه شما فهمیدید که این عمل الان یک عمل عبادتی هست یک عبادتی چون قصد شرعی شما اومده بر حسب اون عدات انمایی که اول حدیث اومده انما الاعمال ادات حسری گفتیم جمهور علماء مالک و شافعی و احمد بر اینم که صحت اعمال یعنی انما صحت اعمالی به صحت نیه صحت اعمال برمیگرده به چی؟ صحت نیه پس اینجا مضاف حصد شده و جای مضاف مضاف علیه نشسته پس هیچ عبادتی بلحث به این مذهب هیچ عبادتی ساعتی بدون نیت قابل قبول نیست نه بودو نه قرص نه نه نماز هیچ عبادتی چون عداد حصده تمامی اعمال اعمال چی گفتیم؟ بحث شرعه بحث دینه تمامی اعمال مورد قبول نیست تا اینکه نیت در اون باشه حنفی ها تمام ابو حنیفه بر اینه که در اینجا بحث در نیست بلکه بحث انما کمال اعمالی بکمال ا نیه ماف در اینجا اون چیزی که مقدر میشه کماله یعنی کامل بودن اعمال یعنی هر چه نیت کاملتر باشه عمل ارزشش بیشتره مگر در تمم مگر در تمم که حنیفه رحمه الله شرط میگذاره که چی باشه نیت باشه اگر بلند شدی قصد نداری قصد نداری الله رکبه نماز کنید قصد نداری همجوری بزرگشتی دی. زیرفت سیر دوش قصد نداری قصد نداری هر عبادتی میخواین انجام بدی بدون نیت رکبی مکه همجوری تواب کردی بگیره قصد خواهد نمیشه, نمیشه. و مگر در تیمون که شرک تو داشته چی؟ قصد چون میگن که تیمون بدله بدل باید قصد دران باشه مرزب ثبوت در این مسئله به امام اوزاییه که میگه هیچ عملی نیاز به نیت داره هیچ عملی نیاز به نیت نداره لیکن حدیث رد بر هر دو مذهب دلیلی هست. بر مذهب جمهور به دلیل فرموده یا الله جل شانه و ما امرو ایلا الله مخلصین لخود دین. دین از آن خدا باید اولا خدا بما معین بکنه که دین شرع دوما ما در اون دین اخلاق داشته باشیم این دستوری که و ما امرو ایلا الله. این دستوری که به ما داده در عبادت داشته باشیم اخلاص و در همین آیه هم اومده و ما عمر الا لی الله بر اخلاص؟, اخلاص و له الدین بر اساس اخلاص و تدیونی که از اون الان رضایت کرده و اخلاص هم همون نیت و خصد دل که در اینجا خداوند به ما ام میکنن درسته؟ له الدین. تمام امرو امن که ما باید اخلاص داشته باشیم اگر شرعی نبود اگر بحث عرفی بود آیا خداوند به عرف امر میکنه آیا خداوند به عادت امر میکنه عادت مطلق یک عادت مطلقی باشه در میان مردم در طریقه مثلا قاویدان در طریقه فلان کردن بعد خداوند بیاد امر بکنه خیر مگر اینکه اون امر اگر اون عادت امر منحادت با باشه خداوند کاسته اون عادت را تأیید بکنه و منزلتش رو بالا ببره و بپسنده تقریر بکنه با اون امرش و در اینجا مثل اونجا مثل مسئله قبلی بحث تعیید خداوند اون کار منزلت شرحی پیدا میکنه یعنی اگر اون کار رو انجام دادی، سی پادشاهی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بس امره خدابا دليل بحثي دليل بروجوبه ووجوب دليل برئين ميده كشي نيه واخلاص مصدر شرعي هيك فعل شرعيه مطلوب خاصه شده على طرف خدامند ازمون به همین دلیل موضوع قصير الله سبحانه و تعالی میکنه فرمودی خدا من اذا تو و ملصرات سخت سلوب وجوه هکم که اگر برای نماز بلند شدید پس صورت خودتون را بشورید نیه که معنای نیت در این آیه هست چون در این آیه که اذا قمت و ملصر اگر برای نماز برای نماز بلند شده یعنی به قصد نماز بلند شده پس در این آیه هم معنای ق در کی وجودو گرفتن نه شاال یک یکی خنفی بیا احتجاج رو روکنه استدلال بکنه بگه خب این برای یه وجودو تام از توجا تاب از کیا وقتی که وجودو که اصل جایز شد فرع عمل باب اولا قیاس اولا در قیاس در قیاس هم در از احنخوااضه حفی اعترااضی که دارن در این مسئله اینه که میگن میگن که وزو گرفتن عادتی پاکی، عبادتی جواب اولا من اولا خداون دستور داده دستور و اخلاف دو من دستور به وزود. دستور به فعل یک چیزی و اونم به قصد یک عبادت مشروع به قصد نماز دلیل بر چیه؟ دلیل بر اونه که اون وسیله مثل اون چیزی که بهش دستور داده شدیم عبادت اگر نماز عبادت وسیله ای که به اون عبادت معذی بشه که اونم وضوحت اون وضو هم عبادت و سنتا به این مسئله گواه میده از جمله حدیثی که در صحیح مسلم در شطر و ایمان طهور، سهارت و بزوگ گرفتنش نصف ایمانه و حدیث در بحث شأن بزوگ در اینکه کفره گناه هد عجر و منزلت انسان را بالا میبره هم زیاده از جمله اون حادیثی که اومده انسانی که پا مسجد سوی مصد هر قطره ای از او میچکه حسنه برای او نوشته نشه و کفره گناهانش میشه پس خود وزو گرفتن خود وزو گرفتن یک مطلب شرعی یک مقصود شرعی یک امر شرعی هست که خداون پذیرفته و پسندیده و در قبال اون خاداش رو عجب داشته خداون برای عرف خاداش نگذاشته سوار ماشین شدی عجب نداری. سوار موتور شدی آج لیکن مزگرفی آج رو پوضش داری. خب این فراد شد. سبحانک اللہ حمد. سبحان اللہ بحمد و سبحان